دوازده پرنسس رقصنده نوشته ی برادران گریم برگردان اسمایل پورکازه ناشر کانون فرهنگی چوک راوی رضا امرانی بازیگران به ترتیب اجرای نقش معصومه عزیز محمدی احمد غلامی منیره سلیمی راضیه هاشمی همایون ظفرپور میلاد تمدن کارگردان رضا عمرانی در کشوری دوردست پادشاهی با دوازده دختر زیبایش زندگی می کرد دخترهای پادشاه بر روی دوازده تخت خواب فاخر و گرانبها ها می خوابیدند که جملگی آنها در یک اتاق بزرگ قرار داشتند دخترها وقتی که پس از صرف شام به رخت خواب می رفتند، در اتاق خواب را میبستند و از سمت داخل قفل می کردند اما در کمال تعجب هر صبحگاه، کفش آنها در وضعیتی پیدا میشدند که نشانگر رقصیدن آنها در سراسر شب قبل بودند. هیچکس نمیدانست که چگونه چنین چیزی امکان پذیر است یا اینکه پرسیس ها شب گذشته را در کجا گذرانیدند؟ پادشاه برای کشف این موضوع داد تا در سراسر کشور اعلام کنند که هر کسی بتواند کشف کند که دختران شبها را در کجا می آنگاه، خواهد توانست علاوه بر انتخاب همسری از میان دختران پادشاه به عنوان یک شخص مهم در درگاه سلطنت مشغول به کار شود و پس از او به سلطنت بنشیند افراد زیادی برای کشف راز پرنسس‌های های رخصنده کوشیدند اما هیچ کدام موفقیتی به دست نیاوردند. آنها سرانجام پس از سه روز و سه شب ناکامی با دستور مستقیم پادشاه کشته می‌شدند. بهزودی پسر جوان پادشاهی از سرزمین های دور به آنجا آمد. او بسیار مورد تقریم و احترام قرار گرفت و طبق دستور مستقیم پادشاه از او به خوبی پذیرایی شد. غروب آن روز پسر جوان را به اتاق کوچکی بردند که درست مجاور خوابگاه دوازده تخت خوابه دختران پادشاه قرار داشت. او میبایست در آنجا بماند تا بفهمد که دختران پادشاه برای رقص شبانه به کجا میروند و با چه افرادی میرخسند. آن شب با وجودی که در اتاق پسر جوان را اندکی باز گذاشته بودند هیچ اتفاقی نیفتاد و او هیچ صدایی را نشنید. اوزا آنچنان آرام بود که پسر جوان در اواخر شب با اطمینان به خواب رفت. اما زمانی که صبح روز بعد بیدار شد دریافت یافت که فرانسس ها مجددا به رقص پرداختند زیرا در کف کفش های هر کدامشان حفره هایی وجود داشت این اتفاق دوباره در شب های دوم و سوم نیز تکرار شد بنابراین پادشاه بر حسب قول و قرارش دستور داد که او را نیز همانند افراد قبلی گردن بزنند و سرش را از تنش جدا سازند بعد از شاهزاده جوان نیز افراد بسیار دیگری برای کشف ماجرای رقصیدن شبانه پرنسس‌ها به آنجا آمدند اما همگی به سرنوشت شاهزاده جوان و ناکام دچار گردیدند و زندگی خودشان را در راه دشوار دست یابی به پرنسس‌های های زیبا و تخت سلطنت گذاشتند. تا اینکه اتفاق جدیدی افتاد و یک کهنه سرباز جنگ دیده و ممارست دیده به آنجا آمد. او آنچنان در یکی از نبردها زخمهای عمیق و مهلکی برداشته بود که دیگر قادر به ادامه وظایف نبرد با دشمنان کشورش نبود. بنابراین آن زمان به خانه برمیگشت. گشت. کوهن سرباز در مسیر بازگشت به محل زندگیش از قلمرو حکومت پادشاه مذکور میگذشت و بدین طریق از ماجرا با خبر گردید. او در بخشی از مسافرتش به جنگلی انبوه رسید و در میانه های جنگل اسرارآمیز چادر زد کهن سرباز در آنجا با پیرزنی مهربان و تنها مواجه شد و پیرزن از روی دلسوزی به مداوای زخمهایش حمت گراشت پیرزن یک روز از او پرسید مقصدت کجاست من به دشواری می توانم بگویم که به کجا میروم یا بهتر است در آینده به چه کاری مشغول شوم چون نقشه خاصی برای آینده ندارم اما در این فکر هستم که ای کاش میدانستم که پرنسس های این سرزمین شبها در کجا می رخصند. تا شاید از این طریق به شغل و منصبی برسم و یا احیانا در آینده به سلطنت نائل گردم بسیار خوب اما کشف این موضوع چندان مهم و دشوار نیست و تنها باید موازب باشی که در این مدت هیچگاه از چیزهایی که به سالم بودنشان اطمینان نداری نخوری و نیاشامی زیرا یکی از پرانسس ها در غروب هر روز به نزدت می آید و برای از کراکی و آشامیدنی مسموم میآورد به محض اینکه آنها را بخوری و بلا فاصله بعد از اینکه پرنسس زیبا از نزدت برود سریعا به خواب سنگینی فرو می‌روی و از اتفاقات به کلی بی خبر می میمانی. پیرزن آنگاه ردایی به وی و گفت به محض اینکه این ردا را بر خودت بیاندازی کاملا از نظرها ناپدید میشوی و به دینگونه خواهی توانست پرنسس‌ها را به هر کجا بروند تعقیب کنید. کوهن سرباز تمامی نصایح و راه پیرزن مهربان را شنید و تصمیم گرفت که آنها را در نظر داشته باشد و نهایت سعی و تلاش خود را برای دستیابی به موفقیت و سعادت به عمل آورد. برابر این، کهن سرباز به نزد پادشاه رفت و اظهار داشت که قصد انجام مأموریت دشوار پیدا کردن محل رقصیدن پرنسس ها را دارد و تمام شرایط و اواقبان را میپذیرند. برا فاصله سرباز کار کشته، طبق دستور پادشاه از همه مزایایی که معمولا به این گونه دافتلبان ارائه میشد برخوردار گردید و پادشاه فرمان داد که جامعه سلطنتی فاخری بر او بپوشانند و از او به خوبی پذیرایی کنند. همچنین سفارش کرد که او را با فرارسیدن غروب آفتاب به اتاق کوچک مجاور خوابگاه پرنسس هدایت نمایند تا به مراقبت بپردازد. به محض اینکه کنه سرباز برای استراحت و رفعه خستگی به اتاقش رفت بزرگترین پرنسس با سیمای خندان و دوست داشتنی به خوش آمد آمد و برایش لیوانی نوشیدنی آورد. اما سرباز با تجربه حتی قطره ای از آن را نیاشامید و به نحوی که کسی متوجه نگردد تمامی محتویات دیوان را دور ریخت. کهنه سرباز سرش را موقتا بر بالین گذاشت و در اندک زمانی به خواب رفت به طوری که صدای خور پوف کردنش برخواست. زمانی که دوازده پرنسس صدای خور سرباز را شنیدند از ته دل شروع به خندیدن کردند. <تصفيق> <تصفيق> چنین شخصی نمی‌تواند آنچنان عاقل باشد که زندگی‌اش را نجات بدن. آنگاه همگی پرنسس‌ها از جا برخاستند. های آرایش و کموت های لباسشان را گشودند و لباس‌های فاخر و زیبا را برگزیدند و پس از پوشیدن آنها به بررسی خیش در مقابل آینه پرداختند. آنها از خوشحالی به جست و خیز پرداختند و خودشان را مشتاقانه برای رقصیدن شبانه آماده ساختند. جوانترین پرنسس ها گفت: "آه، من دلیلش رو نمیدانم، اما وقتی شماها رو میبینم که این چونین خوشحال هستید، به صورت ناخودآگاه دلشوره دل میشوم و مطمئنم که یک بدشانسی و حادثه ناگواری برای ما رخ خواهد داد. تو خیلی ساده لحی و برای همین است که همیشه میترسی." آیا فراموش کرده ای که تاکنون تلاش‌های چه تعداد از شاهزادگان به هدر رفته است و نهایتاً کشته شدند؟ و حالا این کهنه سرباز را ببین. من حتی اگر به او داروی خواب‌آور هم نمی‌دادم، به طور طبیعی تا صبح می‌خوابید و حرکتی نداشت. زمانی که ها کاملاً آماده رفتن شدند، جملگی به اتاق کهنه سرباز رفتند تا مجدداً او را ببینند و از خوابیدنش مطمئن گردند. کهان سرباز همچنان خورناس میکشید و خور رو پف میکرد، اونچنان که دستها و پاهایش کمترین جنبشی نداشتند. بنابراین همگی مطمئن شدند که امنیت برقرار است و هیچ گونه خطری رازشان را نمی نمیکند. آنگاه خواهر بزرگتر بر روی رخت خواب خیش نشست و کف دستهایش را محکم بر هم کفت که ناگهان، تخت خواب از زمین بلند شد و یک در کوچک مخفی در زیر آن پیدا شد کوهن سرباز مشاهده کرد که تمامی پرانسس با هدایت خواهر بزرگتر از در کوچک مخفی عبور کردند و پا بر پله گذاشتند. سرباز فرصت مناسب را از دست نداد و بلا فاصله اقدام کرد او ابتدا ردایی را که پیرزن مهربان به او داده بود بر سر گذاشت سپس به تعقیب پرانسس پرداخت در میانه های پله ها بودند که کهنه سرباز اندکی عجله کرد و ضمن راه رفتن پاهای کوچک ترین خاهر را که پشت سر همه آنها در حرکت بود لگت کرد. آ! چرا درست راه نمی روید؟ یکی از شماها همین الان مسیر راه رفتن من را کرد و پاهایم بولاگی شد. توی ابله و دست و و لفتی هستی چون که در اینجا هیچ چیز نیست به بجز اینکه ممکن است به طور اتفاقی میخی از پلهای چوبی بیرون زده و به پاهایت خورده باشد. همگی پرنسس‌ها از پله‌ها پایین رفتند و در انتها خودشان را در یک درختستان دلپذیر و مصفا یافتند که برگ‌های به رنگ نقره‌ای داشتند آنچنان که طلألو و درخشش زیبای آنها همه جا را فرا گرفته بود سرباز آرزو داشت که به همه جا سر بزند بنابراین به محض اینکه چند قدم به جلو برداشت به طور ناخودآگاه روی شاخه خوش‌گیری که بر روی زمین قرار داشت پا گذاشت و آن را شکست من مطمئن هستم که یک جایی کارمان عیب دارند. آیا شما صدای عجیب به شکستن شاخی درخت را نشنیدید؟ پس چرا این صداها قبلا ایجاد نمیشون؟ آنها فقط پرنسهای میزبان ما هستند که چون به آنها نزدیک شده این به شادی مشغولند دخترها در ادامه به درختستان دیگری رسیدند که برک درختانش تماما از طلا بودند آنها سپس به سوامین درختستان رفتند که برگهایش را تماماً علماسهای درخشان تشکیل می‌دادند. دادند. سرباز از هر نوع درخت شاخه ای را می‌شکست و در زیر ردایش پنهام می‌کرد. در این میان هر دفعه صدایی بر می‌خواست. آنچنان که کوچکترین پرانسس از ترس به خود می‌لرزید، اما بزرگترین خواهر همچنان معتقد بود که آن صداها فقط مربوط به پرنسهای میزبان هستند که از خوشحالی فریاد می‌کشند. پرانسیس همچنان به راهشان ادامه دادند تا اینکه به یک دریاچه بزرگ رسیدند. در ساحل دریاچه دقیقاً دوازده قایق کوچک پهلو گرفته بودند و در داخل هر کدام از آنها یک پرانس خوش به انتظار پرانسیس نشسته بود. هر یک از پرانسیس سوار یکی از قایق ها شدند و کوکن سرباز نیز دور از چشم همگی وارد قایقی شد که کوچکترین پرنسس را همراه هم همچنان که آنها بر روی دریاچه روان بودند پرانسی که در قایق جوانترین پرنسس و کهن سرباز نشسته بود گفت من علتش را نمیدانم اما فکر میکنم با وجودی که با تمام قوا پا میزنم اما همچنان همیشه سرعت نمیگیریم آنچنان که من کاملا خسته شدم به نظرم قایق ما امروز بیشتر از همیشه سنگی شده است من نه. فکر میکنم به خاطر گرمایی بیش از حد هوا باشد. زیرا گرمای امشب بیشتر از هر شب دیگری عذیت هم می در ساحل مقابل این دریاچه قصری زیبا و چراغانی قرار داشت که موسیقی جانبخشی از داخلش به گوش می رسید و صدای موسیقی رقص همه جا را فرا گرفته بود سرانجام تمامی قایخ ها به ساحل رسیدند و همگی پرانس ها و پرانسس ها از آن پیاده شدند و وارد قصر کردیدند لحظاتی بعد هر یک از پرنسها با پرنسس دلخواهش به رقصیدن مشغول شدند و کهنه سرباز هم که همچنان ناپیدا بود در جمع آنان به تنهایی میرخصید. در این زمان هر یک از پرانسس ها برای پرانس ها لیوانی نوشیدنی ریختند و برایشان آوردند. پرانس ها نیز بلا فاصله تمامی محتویات لیوان را نوشیدند و آنها را خالی کردند. این ماجرا تا صبح ادامه یافت. اما جوانترین پرنسس هر از چندگاه به نحو بی سابقی ترس و وحشت می کرد. ولی بزرگترین پرنسس هر بار او را به سکوت و آرامش دعوت می نمود. آنها تا ساعت سه صبح رقصیدند و خوش گذراندند، سپس کفش های سایده شده خودشان را از پا خارج ساختند، زیرا مجبور به ترک آنجا بودند، پرنسها دختران را به ساحل بردند و سوار قایق ها کردند و پاروزنان از روی دریاچه بزرگ به جایگاه اولیه باز در حالی که کهن سرباز این بار در قایق حامل بزرگترین پرنسس سوار گشته بود. تمامی پرسها و پرسیس در ساحل مقابل از همدیگر جدا شدند. پرنسسها ها نوید بازگشتن همگی را در شب آینده، پرنس ها دادند و قول و قرارهای بسیار منعقد ساختند هنگامی که پرنسس ها به پله های قصر پادشاه رسیدند کهن سرباز پیش دستی کرد و خود را قبل از آنها به اتاقش رسانید و خیشتن را به خواب زد دوازده پرنسس با احوالی خسته و کوفته با کمال احتیاط و آهسته به اتاقشان رفتند بزرگترین پرانسس در حالی که صدای خورناس ها و خروپوف ساختگی کهان سرباز به گوش می رسید، به آنان گفت مطمئن باشید که همه چیز همچنان آرام است و هیچ کس از اسرار ما بخبر نشده است آنها لباس خود را از تن خارج ساختند و لباس های زریف خواب را پوشیدند سپس کفشهایشان را از پاهای خسته درآوردند و به بستر رفتند سرواز صبح همان روز هیچ مطلبی درباره اتفاقاتی که شاهد بود بر زبان نیاورد. زیرا تصمیم داشت تا چیزهای بیشتری از این ماجرای عجیب دریابد. او به تعقیب ها در شب‌های دوم و سوم نیز ادامه داد. اما همه اتفاقات همان طوری بودند که در شب اول وقوع یافتند و پرنسسا آنقدر می‌رخصیدند تا اینکه کفش‌هایشون فرسوده میشد. سپس با حالت خسته و کوفته به قصر باز می گشتند. سرباز در سومین شب یکی از فنجان های قصر پرنسها را از داخل گنجه برداشت زیرا به زودی مجبور بود که راز خیش و آنان را ملا سازد. کهنه سرباز با همراه داشتن فنجان تلایی و سه شاخص درختانی با برگهای نقرهی، تلایی و علماسکون به نزد پادشاه رفت در حالی که دوازده پرنسس در پشت در سالن سلطنتی گوش به زنگ ایستاده بودند تا گزارش کهنه سرباز به پادشاه را بشنوند و به عاقبت نافرجام وی بخندند. پادشاه از کهنه سرباز پرسید؟ خوب بگو ببینم اگر در دوازده دختر من شبها برای رقصیدن به کجا می روند؟ جناب دوازده پرنسس شما شبها به یک قصر در زیر زمین می روند و در آنجا با دوازده پرنس خوشندام تا سپید صبح میرقصند او سپس هرانچ از وقایع سه شب گذشته شاهد بود برای پادشاه بازگو کرد و در پایان نیز سه شاخه درخت و فنجان طلایی را که همراه داشت به حضور پادشاه تقدیم نمود. پادشاه تمامی دوازده دختر زیبایش را به حضور طلبید و از آنها پرسید که آیا هر آنچه که کهنه‌سرباز درباره ماجرای رقصیدنشان میگوید حقیقت دارد یا نه دختران پادشاه وقتی دیدند که تمامی اسرارشان کشف شده و هیچ چاره برای انکار کردن اتفاقات شبانه باقی نمانده است اجباراً به آنها اقرار و اعتراف کردند پادشاه از سرباز فرسید؟ حال میخواهم بدانم که کدام یک از فرانسس ها را برای همسری برمیگزینید. پادشاه من خیلی جوان نیستم. بنابراین مایلم بزرگترین دخترتان را انتخاب نموده و او را از شما خواستگاری کنم. پادشاه نیز با خواسته کهنه سرباز موافقت کرد. آنها به زودی با دستور پادشاه و طی جشنی بزرگ و فراگیر با همدیگر ازدواج کردند و کهنه سرباز به عنوان وارث پادشاهی برگزیده شد. صدابرداری صداگذاری و میکس سنم کجوئی، سحیه کننده رازیه هاشمی